بسم الله الرحمن الرحیم اندازه مهربان نهایت بارشت بخان بنامه پروردگار خیش آنکه آفری انسان را از پارچه خون بسته آفری بخان و پروردگارت بسیار است آنکه انسان را با وسیله قلم علم آمخت با انسان آنچه را نمیدانیست آموغد نه چنان از که شکر نعمتهای خدا به جا آنورده می شود بلکه بیگمان انسان سرکشی می کند چون خود را بی نیاز می بیند بیگمان بازگشت به سوی پروردگاه توست آیا دیدی کسی را که باز می دارد بنده را چون نماز می خواند. آیا دیدی اگر برای راست باشد یا مردم را به پرهیزگاری سفارش کند؟ آیا دیدی اگر حق را تکذیب کند و روگرداند؟ آیا نمیداند که بگمان خدا اعمالش را میبیند؟ نچنان است که او میپندارد اگر از این کارها خودداری نکنند موهای بالای پیشانیش یعنی کاکولش را با آتش میگیریم کاکول پیشانی دروگوی خطاکار را بگذار که او همشینان مجلس خود را بخواهد ما هم موظفان دوزخ را فرامی خانیم نچنان است که او میگوید از او فرمان مبرد TO واجكن